اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا صداع وشر وداء وشر وغم لا شفاء إلا شفاؤه برحمتك يا ارحم الراحمين در بیان نسبت بین اصول عملیه تنزیلی بعضها معقض یا اصول تنزیلی به تنزیلی یه صحبتی شد تعبیر شد داری این تبیری که توضیح برید بردین سبق بریه مطالب خودمون که اصول عملیه به منزله معنای حرفی هستند در مقابل امارات که منزله معنای اسمی است. یه توضیح اول راجع به خود معنای حرفی مقدار که تصور بشه مراد ما در اینجا از معنای حرفی چیه روشن بشه برگردیم به بحث. اسعدین راجع به معنای حرفی خب اسعدین بحث شده حتی یه عبارتی رو منسوب به معنی ربونی که راغول اثر فرمودن. و در کتب ادبی این بحث خب به نحو ابتدائاً ادبی بعد هم به کتب اصولی در کتب اصولی ملاحظه متعددی و مختلفی معنی حرفی وارد شد مثلا فرض کنیم در معالم که جزء کتب معلله حوزه های ما توی بحث استثناء استثناء تبع للجمله متعدده این بحث معنی حرفی رو شما اونجا آوردن به این مناسبتی که نمیخوام خب بعد ها در کتب اصولی ما غالبا معنی حرفی رو در مقدمات علم و اصول وارد نمیشه به اشاره عمومی به اختلاف زرقش، اونجا متعرض شدن در کتاب اصولی و ما بود بیش از دیویستا در حوزه های ما این. خب صحبت های متعدد در این که حقیقت هر شیعه ندارم معنی جزئیست اون معنی مثلا موضوع درش خاصه موضوع درش حتی مستمارمفیش هم خاصی میدونن هر رو خاصی میدونست و از صحبت هایی که خب حالا جش اینجا نیست در کتب ادبی سابق بیشتر جهت به اصطلاح جهت لغوی بحث مثلا مند به یا تدل على الابتدای با تقریبا میشه گفت از های متأخر مثلا در حوزه های ما از زمان مثلا تفسیر این کتاب شرح کافی ماه مرحوم نجوی نجم که در نجف هم نوشته و بسیار کتاب ایشون یه چونه تحریدی دارن که ما در معنا فی غیره که خودش فی نفسه معنای نداره و یوجه در معنا فی غیره معنا در غیرش میکنه و الله با اون معنای اسمی که مرادف اوست هیچ فر داره این ترگی بود اجمادن که مربون نجم العیمه اصلا رو هم رعز کردم بعض حواشی باز این بعضی از هواشی بازی کتاب اعتراف کنه که نه فرق بینید مثلا معنی حرفی و اسمی فرق بینید جوهر و عرز معنی اسمی جوهر معنی حرفی عرز. و میرسد شریف پاشه خوبی اونجا داره که اگر من و کی باشه باید اهدامان مکان آخر استعمال بشه و جواب میده این مقلبی بود به غیر از حالا جهت معانی که مثلا منور چیست یک تحلیلی رو برای معانی حرفی داد که خب تو حوزه های ما این محل کلام شد محل توجه بیشتری شد مثلا اینکه چون ایشون از بزرگان علمان شیعه بود و در نجف بود و این کتاب رو هم در نجف نوشه ما توطیه ها داشته ارز کردیم داره خبی اینجا بعدها در عبارات کتاب فصول الله یا نازل به ایشان بوده الان تو ذهنم نیست ایشون تعبیر میکنه در فرق بین معنای حرفی به اسم میشند ایشون به معنای عالی معنا حرفی اون چیزی که معناش عالی در مقابل اسم هستلالیه بعد از خصوص هم این تعبیر فقط در کتاب کفایه آمده که به عنوان کتاب درسی در حوزه ها ایشون هم همون تعبیر معنای عالی رو به کار میبره لکن کاملا واضحه که ناظر به کلمات نجمال احمست همون معنای ندیم این خاص خودش در کفای وال خودش سه دلیل اقامه کرده بر اتحاد معنای اسمی و حرفی و اینکه وزن ورز و موضوع و در حروف مثل اسمان فرق نمی کنه این مطلب من قرار نه به اشاره از بکنم که اگه تدریس بکنید ایشون در این سوجی که ایراد می‌کرده، سر کرده اثبات بکنه مستعمرن فی عام از این راه خودش خلاصه امور سر اصلی در کویه است اثبات این که مستعمرن فی عامه چون اگه مستعمرن فی عام بود باید موضوع له واس قطعاً عام باشه از اون راه واضحه به اون اشاره بیست شریف رو که باید اهداما مکان اخر استعمالش وانوان اون قدر به همون جوابان داده یعنی واضحه ایشون جمعه بین مهد و هاشی میکرده در حالت نحوه ورود و خروج بسیشان فرد بکن مدبوم ناینهی که بعد از ایشون معانی حرفی روی اصطلاح خاص خودشون به کار بردن اختاری میدونستن وقتی ایجادی در مقابل معنای اسمی که اختاری یعنی ایشون میگتن مثلا پس آب که میگید این اختار میکنه اون معنی به ذهن شما اما افعالی که میگید ایجاد میکنی طلب رو معانی حرفیه برای ایجاد حیرت روز معانی حرفیه است و ها که من من که میگید شما ایجاد افتدا میکنی لذارشون محروف شد که معانی هنده داریشون معانی حرفیه رو ایجادی میدونن و معانی اسمیه رو اختاری حالا من چون هستم میموغام وارد بحث بشم البته این تغییر عالی و استعمالی خصوصاً استعلایی خیلی فی مابعد بین علمای اصول رایج نشد و اگر آماد داشته باشن شرح معلوم رشیدی شهر نوصر رشید الله بر کفایه ایشون در خود معنای عالی دو احتمالیه که مورد از معنای عادی باشه خب یه اصطلاح جدیدی ساز کردم ریشهش در کتب و اصول ما به طور قوانین به کتاب فصول برمی‌گرده چون در اون زمان کتاب فسول خونده میشود اگر کسی بخواد خوب این مثل کتاب کفایه یا کلمات شیخ رو به فهمه این دوتا کتاب رو باید اول چند زمین های ذهنی توی این دو کتاب قوانین و حالا در بوزه های ما فسول که خیلی رفته خونده نمیشود همه خونده لذا داری کلمات این بزرگان محل ابهام واقع میشه این صرف اینه اون ارتکازات و حوزبی قبل از شیط و قبل از صاحب کفایی قوانین و فصول بود اگر بخوایی مثلا این کفایی مثلا کفایی که خیلی متحصر به فصوله خیلی ارحاس کفایی متحصر به فصول نه به قوانین به فصول زیاد متحصر دوز کتابی درسی بود خونده میشد. یا لاحقای مباحثه می شود حاله اصلا کنن محصول شده اینه که خیلی از مطالب بسرطه تحجیب مثلا کلمه آری من ح خودش نیچی معنی حرفی هر ارز کردم شاگرد شما نمیخوام پردیم بحث بشم در شاگرد ایشان مرمون های رشدی ایشان آنی رو دو احتمال میدر کلمات کفایی چون بحث در تو خودش شده حالا نه وقت مناسبه دیم اون معنایی رو که مرمون نجموله ایمه گفت که معنای حرفی خودش بی نفسه چیزی نیست در طرفین خودش چیزی نداره خب این خیلی مثالش واضح بود پس شما میگین این عینت روی میز این رویه مثل این رویه که علامه این ما به هزاری نداره چیزی نداره چون این علامه بارد از یکی خود این میز چیزی به نامه علامه نداره ما معنی حرفی این طرف این داشه. این استلاحی که بود خب این معنا رو بعدها فراصل معموم ناینی از اوچه ایشون تربیر ایجاد کرده معموم نجمع ایمه رزی ایجاد به این معنا که یه چیزی که در ترکه این هست ایشون تربیر ایجاد کرده فکر نمیکنم عبارت معموم ناینی چون من ایشون که درک نکنم ایشون نازر به عبارت نجمع ایمه باشه کلمه ایجاد تو عبارت نجمع ایمه آمده اما نه اون ایجادی که نایینی میگه بیرزو. از کلم تحریه این مطلب در محل خودش فعلا فقط فهرسوار از میکنه بله مرحوم آی اسفانهانی که موجود به چهار قسم ما موجود به به نفسه به نفسه، به, نفسه، به, به،, به،, به،, به،, به و قسم چهارم موجود لافی نفسه ایشون نعمای حرفی رو بیه موجود لاطمی این شبیه کلام نجول است این موضوع لاطمی نفسه که ایشون میخوان بفرمایند شبیه کلام نجول حالا به هر حال چون از سرم میخوان باز بشن اونی که ما معترضیم که مرموم آقای نجول علمه فرماده به این معنا را منصوب به عنوی مؤمنیمه الحرف ما اوجه در معنا فقیر سابقه تاریکش اون و تحریفش نسبتاً به هم شابلنی نظریه نیم صفحه بیشتر ایشون رو معنی حرفی تحلیل کردند اون شابلنی شاپوری خود فرمود انسان تنویرات قشنگی فرامیدند و ما به جای تعبیر موجود درف یا ایجادی و اختیار که مرمونهای ایجادی به کار رو ده یا آری از کرد یا ما موازس هست روش معنای حرفی اون است که به لحاظ میشه مراد از این دکار یعنی خودش بی نفسه نیست اون که از شما طرف این رو می بینید و این نگاه کردن طرف و معنای که در بین این دوتا که این خودش علامت پیشرفت عقلی انسانه و دقت انسانه به همیشه ارز کردیم که هر لغتی که معانی حرفی زیاد داره اون دقت فلسفی زیاده و هر لغتی که معانی اسمی زیاد داره پیشرفت علمی زیاده چون ما در پیشرفت علمی فرض که مثلا صدها اختراع میشه هر اختراعی رو اسم رو اما در معانی حرفی اون حیثیات و چهاته یعنی میمیم یک شی رو از زبایی های مختلف میبینیم کسرت معانی حرفیه یا اشکال مختلف معانی حرفیه چون بنای اصولی در معنی حرفی مرادشون حرف نیست فرص حیات الان در لغت عرب ما یه از حروف داریم یک ده از اسما داریم که معنی حرفی دارن یک ده از حیات افرادی داریم مثل مشتق و اینها یه ده از حیات ترکیبی ناقص داریم مثل اضافه و توصیف یه اده حیات ترکیبی تام داریم حالا بخواد جمله خبریه باشه و خصوصا در لغت عربی روی این هیئت و خصوصیات هیئت باز هر رو گذاشتم مثلا یا ایاک نعبوده غیر از نعبوده کنست این دارت کار میکنه این خود اینا معانی حرفی هست میکنه تمام اینا روزات معانی حرفی هست یا معانی به اصطلاح حریات ترکیبی انشائی مثل افعن یعنی ما در دنیای لغت عرب چیزی رو که احساس می‌کنیم یک عرض بسیار عریزیه که به اصطلاح معانی حرفی درو به کار برده شده و این خیلی غنای رو اعتراض خیلی هر چی بیشتر بشه شون الان خیلی از از این که در مناطق محدودی هستند نصیفت سنیدن یعنی آفریقایی و جنگل هایینا خیلی ممکن اصلا معنی, معنی حرفیش مثل ست تا بیشتر نشه خیلی کمه و ارز این نشون میده اون قدرت فکر رو فرصوی مثلا منبار مساب در وزی از لغات و طول معروف برای ورقه یک معنی دارن برای ظاهر که استفاده همونه اصل یه مادی دیگه گذاش در ماده تصرفیه اما در لغت عربی آمدون ماده رو در نظر گرفته که راد و را و با باشه در حیات مختلف رو می چکن. در حیات مختلف برای افاده معانی مختلف این حیات که در این جمعیان همهشون شون معانی اندکاکی هستن و ارز یکی از نقاط بسیار بسیار مهم از این جهر در معانی در معنای حرفی و نیاز معنی حرفی اختزال یا اختصار کلامه یعنی اینا در یک مثالی رو که ما باید مثلا به صورت یک جمله مثلا یک سرطی دو سرطی ببینیم در دو کلمه پس مثلا در همین سلت تو من در کوفه الی در اینجا یک ماده ای داره که سیر و من و کوفه و اون حرکتی که پیدا شده در بسه این اینه دیگه. چیزی که در خارج هست اینه. اما این در این اینها همه مفرد مفصله. یک این سیر رو به حکایت ماضی آورده سرطور تا خب این یک اختصار. این سیر رو به خودش بعد صور کرده این نسبت. این تو معنای هر دیگه. این که این سیر قبل از کوفه نبوده که اسمش ابتداه خود ابتداهی معنی نسبیه دیگه وقتی قبلش چیزی نباشه ابتدا مثلا تو صورت مثلا یاسین یعنی قبل از یاسین قرارت نبود خب این یک مجموعه وقتی این لحاظ یعنی این لحاظ که سر رو به خودش نسبت داده این لحاظ چیزی اضافه نمیکنه سیر همون جای خودش من انجام جای خودم این من این لحاظ لحاظ کرده که سیر قبل از کوفه نبوده منشه سیر شما ما معتقدیم الان دیگه باید نشیم این که من رو برای ابتدا میگن اگر من رو نشیه میدونیم بهتر از ابتداسی معنی جامعه ایست یادم به در سابق 15 تا معنات مغنی برای من داره اونی که جامعه بین همهش نشبیه بودن و منشه بودن بهتر میخوره به بقیه معانی مثل افتداینا پس اونی که منشه اصحیه که قبل از اون نبوده چیزی نیست اینجا کوفه هست قبل قبل از کوفه هم چیز خاصی نیست اما آمدن همین معنا رو به نقره اگه بخواد همین معانی این کلمه رو بخواد بگه شاید دو سرکتو بشه که سیر بوده و در زمان ماضی بوده و این سیر از من بوده و منشأش کوفه بوده <تصفيق> لذا اساساً معانی حرفیه رو بشر در زندگی خودش درست کرده در ای اختصار کلام و ما همچی معانی حرفیه رو به اشکال مختلف چند آنچنشگوز از ازگردن داشته باشیم کلام مختصرتر میشه این و غیر از اینکه معانی حرفیه نکته مهمش اون اندقا که یعنی خودش چیزی نیست مندک که در طرفینه خوده مثلا عینک یه چیزی میز همه واقعیت اما عینک رو ویژه این, این رو چیزی نیست از یک نسبتی بین عینک و میز اینو در میاره دارید بفهمید لذا ما تعبیر کردیم که به به احتمال داره که مراد صاحب اساسی از عالی همین معنا باشه که احتمالاً مراد نظر یا اون حدیث منسوب به امیرالمومنین هم همینطور میشه ما اوجد معنا فی غیره این ایجاری هم نه اون ایجاری نیست که مردم ناخودآگاه تصور فرمودن چون دیگه معانی در محل خودش واقعه گذشته برای ما هستن و آن تذکر چون یکی از ابواب بسیار کلیدی هم در استظهارات هم در تحویل لغوی پس معانی حرفیه معانی اندکاکی هم اون چی که در معانی حرفی مهمه اون طرف اینه این که شما میگینه الما و آب و کوزه این دوتا واقعیت درن اما این نسبت که آب در این نسبت زرفیه نسبت زرفیه در لغت عرب عبارت از این است که یک چیزی محتوی بر دیگری باشه و از او خارج نشه یعنی اگر شما آب در کوزه ریختیم لغریز شد خارج شد اون آبی که خارج شد در کوز نیست در ظرفیت این ظرفیت این هست این بر یک چیزی داشته باشه و اون این برش نباشه ظرفیت این اون رو این ظرفیت این میگیم علما اوف این این ظرفیت این ظرفیت این ظرفیت این ظرفیت این این ظرفیت و کوزه رو می‌بینیم. چیزی لایز نیست. این احکام، این خودش واقعیت نداره. انسان مردم معتبر اسلامی از این تغییر کرده، از موجود باقی نبشه. بعد درمی‌خوابد. یعنی خودش باقی نفسه صدر وجود برش نمی‌کنه. طرفی اینش وجود دارن ایشون سعی کرده همون معنی که موجود رابط و رابطی رو و یا در اینجا انتباه خوده. اینا ریشه در بوده. اینا ریشه‌هاش در کلام مردم نجوانه می‌بود به شکل‌هایی مختلف یارس اون که ما از کلام در میفهمیم، البته چون تعبیر اندکاکی نداره، تعبیر تعبیر خود ماست، نه این مرادش اینه، البته تعبیر اندکاکی تعبیر بنده است. اگر این معنا روشن شد دقت کنیم ما معترنین در اصول عملی هم همینطوره. در اصول عملیه خود لحاظ نمیشه به به شک. در اینجا در حقیقت مثلا ببینید شما یک حالت سابق داشتین کنید برای طرف مثلا طرف مالک کتاب یک حالت بعد حالا این بعدم بعد لازم نیست زمانو در نظر بگیرید این خیلی مهمه در باب استثها زمان در نظر گرفته نشده حدوث و بقا در نظر گرفته شده پس در اینجا در حقیقت شما اینطور نگاه میکنید یک حالت حدوث یک حالت بقا این. این رابطه این به ما های بگه حالت حدوث باقیه در استثاب اینکه که بگه لا تنگذر یقینه به شک خود شک رو نگاه نکرده این شک در اینجا به این لحاظه این معنی هر دویه. اما وقتی که مثلا در نهر و لاغه اما می کنم بنیه علاقه اول از شک مثلا بنیه این شک معنی اسمیه این خود شک لحاظه کرده می‌بینیم که چه تعریفی می‌کنه یک لاظره گزلی به شک داریم اونجا در لاظره گزلی یقینی به شک هدف اون کلام اینه که حالت حدوث رو می‌گینه حالت بقا و لذا اگر حالت حدوث رو دید باز این شک و زد به حالت حدوث یعنی این رو دید حدوث بعد در حدوث شک شد یعنی همون یقینتون متزلزل شد البسوا بر معروف در اونجا اس... جاری نمیشه اصطلاحش هم اول سرش میشه واقعه شک سالی این سر شک اینه مثلا شما های براتون میینه که من وجود داشتم وجود داشتم دو سال قبل با وجودم حالا مثلا یه دفعه بعد از اینش فکر کنم که اصلا من دو سال قبل چج وجود داشتم مثلا اصلا از اصل وجود دو سال قبل من این اصطلاحا شک سالی میگن یعنی شخص بیاد به خود یقین بخوره یعنی شک بیاد به خود حدوث بخوره تو حالا خیال میکنی این حالت هست؟ ولی ازاب بناشون برای ای که این ثابت نیست عکس این هم تصویر بوشه دقت بکنید که یقین مثلا بعد باشه شکر قبل باشه اما در مرحله بعد یقین هست که استلاحا استصاب قهقرایی میگن مثل این که پس ای الان یقین داره تهارت داره نمی نمیدون دو ساعت قبل تهارت داشته ای نداشته این یقین رو به دو ساعت قبل باحت بکشه در پس معنی شد که زوایای دید در حقیقت همون اندکات در غیر روشن شد, شد شما الان شک و یقین رو در از اون سر خانه سال زدید همین شک و یقین و نقطی اساسی در استصحاب هم روشن شد این نیست البته در ذهن ما فعلا این طور که میگیم یقین سابق شک لاحق و سابق و لاحق رو به لحاظ زمان میبینیم در استصحاب زمان نیست اشتباه نشه استصحاب در زمان مازی و حال نیست و لزوم بنای اصولیین در اینه که ان خواهد آمد ممکن است این یقین شما فعلی باشه شک استقبالی باشه و دارای اثر باشه مثالی که هست فرض کنید مرحوم ما خودتون در اول وقت عذری داشت که نمیتونه حضور بگیره ایشو مشغول گهست کنه که اخر وقت واسه گهم همینه که تا اخر بحثم بحث ایشو میفرما نه مو اول وقت میتونه عذر بیاره استصحاب استقبالی میکنه چون یه الان به عذر دادن یعنی مهمه در دقتی این مهمه نهی در بابه استصحاب یقین سابق نمیخوایم شکو برنیم و لازم است و انشالله شاء الله خواهد آمد در محله خودش مرحوم صالح جواهر در استصحاب استقبالی اشغال میکنه برای انصراف ادله اینو مثلا شرایط کلی استصحاب یعنی سابقا یعنی داشتیم الان شک داریم سابقا یعنی داشتیم استصحاب حقیقتش این نیست نه حقیقت استصحاب این نیست حقیقت استصحاب یک یقین به حضور و شک در بقا زمان نگاه نمی‌کند ممکنه یکیش به اصطلاح ماضی باشه شکش در زمان حال باشه که متعارضه ممکنه یکیش در زمان حال باشه شکش در مستقبل باشه میگن فهمه میکنه چون اون نقطه استثاب زمان ماضی و حال نگاه نمیکنه اون ذرافت استثاب یک یقین به حدوثه یک شک شک در وقع این در استثاب این شک کار, کار خاصی نداره این روی شک حساب بکنه این شکش این لحظه میخواد اون حالت ای حدوسی رو به بقا سرایان داره سرایان حالت حدوسی به بقا این حقیقت اضافه بده. لذا گاهی هم ممکنه هر دو استقبالی باشن. مثلا ما تو وای مهمنی فرض با مثال روزخونه هست حساسی از اول نوروز، اول بهار این روزونه راه می‌افته. الان شک می‌گه چون سال‌ها مختلفه، در یک سال تا دهم اردیبهشت، یک سال تا بیست اردیبهشت. امسای شک میکنیم که آیا تا بیسته موردی هست شهر سنا پس اثر شریده شد میگن استثاثام مانعی نداره هم یقینش استقبالیست هم شکش استقبالیست پس اواز بکنیم هم یقینش استقبالیست چرا؟ چون تو استثاثام زمان به این معنای ما لحاظ نیست اونی که در لحاظ استثاثام اینه یک یقین، یک حدوثه یک بقاه. این حدوث رو به بقا کشیدن استثاب اینه یک حدوث یک بقا تمام نقطه که در استثاب این اگر این مطلب روشن شد مفتر اینجا روشن میشه که بین مثلا استثاب در این مثال قاعده یقین قاعده تجاوز با قاعده تجاوز اصلا کلن فرق میکنن یه دفعه میاد حالت سابر رو نگاه میکنه و دنبال اونه یه دفعه اصلا نگاه دنبال چیه دنبال حالات رکوعه. در حقیقت نگاه میکنه رکوعی که ما بین قیام و قعود و سجوده این رکوع رو میبینه که هست این رکوع رو به, به اصطلاح اعتبار میکنه بلاغت رکعت ولیضا این دقتی که الان با تعبیری کردن و با تعبیری که در بحث بود بحثی گذاشته جنبه های حقوقی و قانونی بود بحث امروز جنبه تعبیری بود در این جنبه های تعبیری این جور شک بنده که چون مندکه نگاه نمیشه به استطاع همونطور که دیروز ازدن در مرد قادمیش اصلا شک در اینجا مندک هست به طرف این نگاهش به اینه که یک عمل به حساب دارای شرایط معین قبل و بعدش آمده الان نظرش اون حالت و وسطش مهمگه شما حالت و وسط انجام دادیم این دیگه اصلا کاری همه که نسبت این شک را ما بیاییم با شکلاتن گذاری این به شکل شد نسبت حساب بکنه خلاصه یه بحث رو ازدو کنیم به نظر ما در باب اصول تنزیلی و غیر تنزیلی یا حالا به تعبیر سابق خودمون روح ورود حاکمه یا اصولا نظارتی ما بینه ما نیست نظر و تفسیری ما بینه ما نیست و اما راجع به اماراتون بحث امارات رو نگوشیم در باب امارات از که بحث امارات اینا بیشتر نظرشون یعنی تمام نظر اینها چون داره حجیت و دار مدار کاشفیت میدونن این یک نقطه در عدلی و اصول هم اشد اخت شده حتی تعریف اخت شده لذا اینا آمدن یک نسبتی بین این دوتا بررسی کردن که نسبت فاستان رو حکومت اما به ذهن ما میاد که در امارات کاشفیت حقیقت اماریت نیست حجیت نیست زمینه حجیته حجیت به لحاظ نکته دیگری نیست و اون یکه امروز خود میستم فرمز کنیم حفظ نظام مثلا رفع اختلاف حجیت به اون لحاظه حجیت به لحاظ کاشفیت نیست پس در امارات نظر به واقع و اگرم جعلی میکنه به خاطر این که تأکید بکنه برای رسول به واقع هم به این معناست جعلشان در حقیقت به این معناس که در سلوک این اماره مصلحتی و ما عرض کردیم چون مرحوم‌های دیگران اشاره کردند به مصلحت سلوکی شه عرض سریم یه اختصارش اینجا عرض می‌کنم تفصیلش رو لازم نه قائم به اماره مصلحت سلوکی مصلحتی که قائم از صحت اجتماعی غیر از مصلحتی در خود فعله اون قائم است به ذات فعل و این دو تا مصلحته این مثالش رو کلران هرس کرده شما یک وحیه دیوار رو درست میکنه از آجر خوب اما کت معوج. مواد دیوار خیلی خوبه اما حیرت ترکیبیش خرابه یه دفعه ممکن اصلا موادش خیلی بد باشه اما دیوار صافه این صافی دیوار غیر از مواد دیواره مثل حد سلوکیه چی شبیه اون صافی دیواره یعنی این بنابر این, این که خود هیئت اجتماعی دارای مصالح و مفاصلیه خود دقت بکنه نه اینکه هیئت اجتماعی وضع جامعه یک امر وهمی است ما نباید فکر بکنیم که خود هیئت اجتماعی دارای مصالح خاص خودشه ما در اونجا در با مسأله سلوکی چون شیخ از راهنمافسه بودن توضیحات ارث کرده مثلا قول قاضی رو کی میاد حجه جامعه باشه افراد باشن یکی باشه اختلافی بشه قاضی اگر هیئت اجتماعی نباشه اون توی قاضی که قاضی میت قرار نمیده نوبت به قاضی نمیرسه نوبت به جاهای دیگه این یک چیز یعنی نکته خاصه خودشه نه اینکه ولزا ما معترضی که مصدر سلوکی قائم است به هیئت اجتماعی و این اندکاتی که رو که مرمون این تصور کردن این دیگه لازم. اما اون مسده یه هم ذات فعله فرص مثلا بینید که من تصبر در مال غیر نکنم این ذات فعل مسده و یه نسبت سنجی بین مساله اجتماعی یا مساله اشیاء با عنوانها میشه یا افعال با عنوانها قاعدتا ما باید به دنبال مساله اشیاء با عنوانها باشه اما خب باید مشکل درست میشه در این جور ها سعی بر اینه که مصالح اشیاء با عنوان ها حفظ بشه اما در این حال مسبه اجتماعی را مراعات میکنند پس در باب ادله حجیت امارات روی این تفسیر بحثی و نظر روی جهل و علم نظر تماما روی واقع و اگر هم جهل انجام گیره برای حفظ بر واقع و وصول به واقع این واجبه اما در باب اصول اصول طرز شکه در واقع. درسته در عدل اصول علم احصول علم انه طریبی صرفه کل این لکه حلال حتی تعالی انهو حرامو حتی تعرف انهو حرامو این به این معناست که یعنی حتی تصل حرام مراد اینه اصلا مراد از حدیث وصوله و حرامه ولذا محروض کرام در باب اصول نبوده نرسیدن شما به واقع به تعبیر مرحوم آزیام مسئولیت واقع درست اینه شما. و لذا اینا اصلاً طبیعتا شما باید به ملازمه بگید پس اگر جایی آمد گفت من شما رو به واقع رسوندن بگه اصل اونجا نمیاد این ملازماتی که در باب اثبات قانونی اثبات اصلاً اصول موردش نرسیدن به واقعه و معناش این نیست خود دقت بکنید نرسیدن به واقعه خب طبعا جایی که شما به واقع درسی نرسیدن صدق نمیکنه اما این ناظر نیست مثلا اون بحثی که این نظارت درست نمی کنه میگه تو نرسیدی پس این معناش اینه که اگر رسیدی مثلا در قول قاضی رسیدی دیگه این اصل نیست اصلا ناظره به این صفت نیست نه ادله حجیت امارات ناظره به اصوله نه ادله اصول ناظره به حجیت امارات حالا مثلا تخصص لذوب ذهن ما نسبت سنجیه بین ادله امارات و ادله اصول یا اصول تنزیلی و غیر تنزیلی یا اصول تنزیلی و عزائم عدس خیلی صحیح به نظر نمی‌رسه که عدل در کلمات علامه ببینید این یه چیز اشکالی واقع در مطالبه وامونی اجازه بدین ما در متقابل قانونی کلی وقت انتظائات می کنیم انتظارات ارزش نداره اساساً حکم نیست نه اینا حکم نیست یعنی شما وقتی میگیم قبول و قاضی ناظر به این نیست که موضوعیت برمیاد بله که اماریت میگیره یا فرض این خبر واحد خبر واحد هم, هم, هم فرمان میکنه فقط موضوعیت درش برای تسهیل بر جامعه اگر برطرد شارعه بیاد خبره بود اولا ما خب در خیلی از این ما اولا یک بحث کبرگی کردیم صاحبه چون گیری مخواستیم فیتری بانی امارات رو تخصیم کردیم گفت امارات همه به حکم واحد نیستن این استلاحاتی اینا بحث گوشن زن و اما همه بید. قول اهل خب رو یک نقطه داره نمیدم قول و از اون بازی، یک نکته داره خبرواهی یک نکته داره و بگینه در موضوعات خارجی من این تو چون توضیحاتی سابقا داده اولا با در نظر گرفتن اون مطالب اون هر کدوم یه نکتهی داره نکته خوده برای نکته سر عنوان کشف نیست آقای کوی و دیگرم میگن نکته کشفه تو اون روادم حتی تعریف لزنان رفت میدن به نکته رفتش اینه ما هر مورد اینه که نقطه رفت این این نقطه جدل رقت رو میکنه اون حتی تعریف یعنی در ظرف عدم وصول به واقع وقتی این ناظر نمیشه بگه پس اون که میگه من واصل واقع شدم من جاری نمیشم. اصلا ناظر نیست این جهلش در مورد جهل به واقع به عدم رسول به واقع چون مورد بعد بله این رو شما انتزاع میکنید انتظار. میکنی. انتظار مثل همون فرض کنیم مثلا این که حکم تعلیقی که در باب استثاب تعلیقی است اون حکمی است انتظا حکمه حکم تعلیقی نیست اصلا حکم شرمش که باشه شما انتظار میکنید اشتباه جورد بین انتظا و این خود و حد جمع. این دوتا یک کمی روشن بشه روشن که ما از همیشه همه از عملی برای عملی صورت عملی نیست خب. بله مرحوم شیفه وقتی نیست که عقیدش این بوده که از چون وزیفه عملی جای قطع طریقی میشینه بخاطر جریع عملی بکنه روشن نیست نه خیلی روشن نیست. و اصول فهم که اصول تنظیری باقی تنظیری فهم امر دومی رو مرحوم آزی ها در دا اینجا دارن کلاف یخفا اندر خلاف البراعت را الاشتغ مقام غیر متنع الخلافی انل است دو تا بحث در اصول عامله در اصول قدیم مثل فرضون ذریعه سر مرتضی اگه دستون باشه آخره جلد دوم یک مسئله به آخر کتاب این مسئله حزره اباحه رو ایشون مطرح کرده که اصل در اشیاء اباحه هست یا هست اینا اونجا دارن یک اصلا اینجا دارن که اصل در اشیاء براءت یا مثلا اباحه بحث سر اینه که این دوتا تا با هم چه فرقی میکنم؟ بحث براءت و شغل و بحث اساتره حزر عباه مرحوم آیه عراقی میگه بداهت وضوح فرق بین این مقامها فعلل نزاع اوناک حزر عباه حزر مند این مقامو فی مایثقه لو به العقل فی حکم الاشیاء معتب النظر ان ورود حکم نشاره الاشیاء اونجا ناظر به حکم عقل به خلاف مقام فا این منخلاف فی براعتاً او احتیاطاً انما هو بعد ملاحظه ورود حکم الاشياء من منخبل شهر و, و بین المعمرینه بونون بایی بل انتعمل فا عدم تلازم بین المسألت این فالحکم ای زن چون تلازم یا میدونید هی تو انه هو امکن اختیار الاشياء فی خرض اختیار الاباهه فی کل کردن مثلا قائل بشیم که از در اشياء است لکن بعد از ورود شر احتیاضیشون گرفت چه نداره اون عقل این شرع این خلاصه نظر مبارک در فرق بین مسئله اون مسئله نظر به حکم عقل این مسئله نظر به حکم شرع الان مثلا دقیقاً این رو مرادش مولا واژه در درس فرمایند تو بحث برابرت عقلم حشرعه ها سوال اهل شرع میذ و تعجب عل میشن شرع ایشون, ایشون کجاست ما که چه طلبیدی میفرمون که مثلا ایشون درست نیست ایشون وقتی در بحث دراعات و فقط نظر به شرع برائت عقلی هم داری خب میتونیم که حدی از آیین مصیبی مثلا تو بحث به اصطلاح اقل و اکثر ارتباطی مثلا برائت عقلی جاری نمیدونم ورزش شرعی جاری نمیدونم خب این هستن مدل شما وجود داره اینطور نیست حالا ایشون فرمودن اصلا حضور واساعتون طبیعتا میدونن در اینجور مسائل از علما ما ممکنه 30 40 صفحه 50 صفحه بنویسن یک اینکه عبارات مثلا فلان اینجور گفت فلان اینجور گفت این فالان اینجور گفت فلان تفسیر بود خب ما الان در بحث اصولی تمام این بحثا رو کنار می‌ذاریم این که محتویات کلام سید مرتضی یا دیگران یا اصول اهل سنت چیه و هدفشون چی بوده و بیایم با ها بحث بکنیم که آقا این مطلب درست اینا بحث نیست این که به فایده بزرگان ما هم اسلام افراد بزرگی بودن میکن خب ممکنه مسائل در یک زمان از یک زاویه خیلی علمی نبوده دقیق نبوده کم کل اول و آخری. این مطلبه که ایشون میفرمایند اولا ظاهر بحث همینه ظاهر بحث چون میگن ما, ما داری افکن بهده به غرود فل اشیا قبل ورود شم هل اله هز اول عباه هم و تا خود لکن لیکن من دیگه باید چون قائل نیستم تعمل که هاشم تو میکنه ظاهرا عقل تنها نیست مثلا اونه که غالب حضرم میگن که اصلا این ما خودمون و افعالمون و همین ملک خداست لا روزو تصرفی ملک داره لا به ازنم اینجا نازرم به یک امر هم شرعی و هم یک امر عرفی که تصرف در ملک باشه الان حالا حاله عدلشون هم که آدم نگاه میکنه عدلش این واضح نیست طرفه یک جا یک امر واقعی رو نیام مثل این یک جا مثلا میگن ما اگر ندانیم اینطوره اگر ندانیم من ارز کردم به کلی دو هر جا بحث واقع میره اینجا حقائق اشعاب ماهی مراده هر جا رو این میره حکم ظاهری مراده و این انصافم در کلمات اینه تو زمان خودم من تا نگم من ارز کردم بهترین راه اینه که ما یک تفکیق قائل بشیم یکی اینکه اگر ما نظرمون به واقع باشه تعبیر به قائده بکنیم اگر نظرمون به ظاهر باشه تعبیر به حسی بکنیم این دوتر از هم جدا بکنیم و دو مسئله هم بکنیم نه این فرقی مرمو آزه باشن بعد ازشان که این فرقی بذاشن به ذهن ما این میاد حالا این ممکن این اصطلاح با کلماتون آقا نخاره با کلماتون خیلی دنباله به کلماتی یکی نکنیم. ما بیریم بحث رو اینجوری قرار دیم یک این نبیه که این بحث تقریبا جنبه فقیه هم پیدا میکنه آیا مختزای مستفاد از حکم عقل و نقل و عدله و و عقل و همه این که اشیا به ماهیه واقعا به عنوان هل حل واقعی حلال هم کشیدن به عنوان تریاب کشیدن به عنوان تریاب افیوم کشیدن اصلا به عنوان هلال هم ما و شعیه به عنوان هلاله واقعا حلاله شاره واقعا او را حلال قرار داد حالا شهر رایشم حکم عقل باشه پس این این اسمشون قاعدت الهر قاعده هر متعرض این بشه اینوی بحث بکنیم قاعده هم. که آیا اشیاء به عنوان الواقعی و به ما هوه هم الا ما خرجه به دلیل که از اون حدیث اطلاع با این معنا مناسبه این حدیث اطلاق کرد لجیری مطلق هر تعریفی نه لون چون گفی یه تعریفی نه حکم واقعی ای مرا هر حکمی که مغایاب به عنر واقعی بشه ای واقعی است هر حکمی که مغایاب به علم و خلاق بشه اصل هر تعریف شد اون هر تعریفی نه لون از کلیم از منتهادات مرحوم را با این مفهوم در کتاب عملي آمده اگر این کامپیوتر است نگاه کنیم مصنوعات از گنجاند سوال نمیکنیم که بودن زاین کل دوشه این مطلق حتی اولیت یه اممان اونه یه پس این بحث اولی آیا قاعده اولیه حلیت اشیاره یا حرمت اشیاره یا نه چیزی در نمیاریم از ادله در نمیاریم که از سر مدر فراز من اونانی در فوارد اوهل لکن مافل عرض جمعیم روزه کرده از سر اون آیه بنامون اوهل لکن مافل عرض نداریم خلق لکن مافل عرض جمعیم حالا اشتباه شد در کار استر بهش نشون کیف ماکان علاوه بر اینکه انصاف قضیه با همین آیه مبارد که با مجموعه شواهد قاعده هل ثابته خوب قاعده هل بحث دوم اگر ما حکم اشیاء رو به عنوان هل واقعی در نظر ببودیم به عنوان هل ظاهری و به عنوان مجهول این قید از اون بحثه بگیم هر شیئی مثلا همین سیگار کشیدن نه با عنوان فی نفس رواقه سیگار کشیدن اینکه ما حرمتیشو نمیدونیم این عسالۃ الهدل اسم شده پس یک قاعده الهدل بسازیم یک عسالۃ الهدل بسازیم حالا بجویین هر دوی طازیان در میان عرب و شرعیان مثلا اصلا میگم خیلی چیز کایین عبادات خداها رو بخونن اونجا چی گفته این چی گفته تولا نیست اگر این کارو بکنیم خیلی خوبه اگه نکردن حالا مراد اونا از اساطیر حزن اباحه این بوده نبوده از اسکن بعضی استذار این اینو مثلا میگه ما تسرب در متن خب این حکم واقعی دیگه؟ این که حکم ظاهری نیست نمیخوام وارد اون بحث بشم که اصلا اون بحث در اباره انسجام داره انسجام نداره ما معتقدیم انسجام بحث این جوریه شد یک اصل اولی کارده در حلیت و حرمت به بله خود من عقیده اونه که از مجموع شواهر حتی خلال اکمان خود از هم در میاد حلیت که هر شیعی به عنوانه اصل اولی شیعیته حتی روی تیه امن که در روی باید نحق شد ولی عنوانه به عنوان سیگاه کشیم به عنوانه مثلا فریاد کشیم به عنوانه بنس دهم اگر در اینجا موفق نشدیم به تبع جل... و گذر و قانون تطابق بگیم از ادله دیگر نماد ما ببین بحث دوم بگید نه به عنوانه به عنوان انه مشغول این به عنوان انه مشغول اساسه نه وقتی اینجوری بکنید تو بحث براءت و اشتغال در حقیقت دوباره اساس حل دارید نه به عنوان الهاقی به با عنوان مشکوک به عنوان انه مشکوک و این خیلی راحت که نظر ما خیلی بودا بخش دادانه البته اگر با عنوانه شد فقط در شبهاتو حکمیه تصویر میشه اما با عنوان مجبور شد در شبهاتو حکمیه موضوعیه تصویر میشه مثلا این الان یکیت چیزیست که مشروع اکمال تو هست مال تو نیست محسوب محسوب مخصول نیست مباهه مالک یار نداره تو بیا بگیم این شیء مشروع هم حلاله برای شما این پس قاعده اس اص... قاعده هل فقط تو شبات حکم کلی میاد حال اسالت هل تو شبات حکم کلی میداد تو شبات موضوعیه ان شاء الله اعسان کرد در شون روایت اساتل هل ایشون در اینجا آورده ان شاء الله کرد که انسابش اینه که ما چند تا روایت شده اساتل هل با بغض نظر از اشکار دیگه در سندهاش وجود داره به لحاظهای مختلفه فر اشاره میکنه شده در, در محل خودش عذر مجموعه روایات اساطر هل در شواهد حکمیه نمیاد این دواده معروف کلوشین و که حلال حتی تعریف این اینا اصلا با شواهد موجود زائد و واسطا امثله اینها ناظرش شواهد موضوعیه یه تعبیر دیگه انداری کل و شئاً فیه حلال و حرام اینم اختصاص به شواهد موضوعیه داره شواهد حکمیه شامل نمیشه ما در شواهد حکمیه اساطر هل ثابت نیست در شواهد موضوعیه ثابت نیست. همون در شبهاتو حکمیه به احتمال بسیار قوی قاعده هل ثابته پس برای اینالو من معاضی اینجور فهمدم من اونها این چیزیگی اینجور دارم این بحثا رو فقط بذاریم کنار تره ما اینه که در اصول دو تا مسئله بحث رو که اینکه قاعده هل یکی اصابت هل, هل و ادله یوم این راجع به هل و چون عبارتو استاده مخواهیم بخونیم اینشالاد یا فردا یا پس سردا که اسالوت طهاره در قاعده هم همین جوره یکی <تصح> قاعده طهارتو تو بگیم شار هر چیزی که خرب کرده رو پاک قرار واقعا به عنوان این قاعده طهاره یکی اسالوت طهاره که شب شک شب در شبوات حکمی کلیه میشه یکی هم اسالوت‌ها در شبوات موضوعیه این ان شاءالله فرض هست که پس که قاعده طهارت ما نداریم که هر چیزی شار پاک خرب کرده به عنوانه قاعده تهارت ثابت نیست بله اصالت تهارت ثابته لکن مشکوره بین آقای کنم بلا خلاف خلاف نوازه نیچون قدم اصلا متعرضه شده لکن این شبهه داریم که ما در شبهات حکمی کلی اصالت تهارت جده نشه چون ربایت ما یکیه اون دوباره تعمیرش اینه کلو شیعه نقیب حتی تعریف انه ها انصافا این به شبهات حکمی نمیخواه نزیف و قذر به شبهات موضوعی انصبه. علایه حاله مشهور برای که بلا خلاف در شعات و حکمیه و موضوعی اصالت و تهاره نه قاعده اتاره البته همونشون روشن قاعده اتاره با که مرادشون اصالت و تهاره ما معتقد بودیم اگر این مصطلح که ارز کردم الان فعلا نگم کسی حتی از معاصره ما این اصطلاح نوشته باشه چه برسه به قبل از معاصری اگر این اصطلاح مراعات بشه تمایز امها سوشندتر میشه پس ما توی اساس برای اثر شما از اسالت اله بحث میکنیم تو اون که اصل بر اشیاء حضر یا غیاب هست از قاعده اله بحث میکنیم فرق دو بحث هم روشن میشه دیگه بیایید برای شما بخونیم که مثلا عازیه چی گفته نائمی چی گفته فلان چی گفته نه خیلی مسترس امر نیست به نظر ما بهترین راه برای تحصیل این دو مسئله اینه صلی الله علی محمد و آله طاهرین